شنیدم با سعید به سفر خواهید رفت این بار به کجا می روید؟ من از سفر به استان اصفهان چیزهای زیادی در مورد ایران یاد گرفتم این بار به استان فارس می رویم. شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران است به خانه پدر رامین هم می روید. بلی اتفاقا رامین الان در شیراز است. حتما به خانه آنها می رویم. میدانی شیراز به چه چیزی شهرت دارد؟ نه فقط میدانم آثار باستانی زیادی دارد. شیراز به شهر شعر و گل و بلبل معروف است. اسم این شهر در یک لوح گلی مربوط به چهار هزار سال پیش آمده است پس شیراز قدیمی تر از سلسله هخامنشی است بله اما شیراز در زمان هخامنشیان شهر مهمی بوده است استان فارس در کجای ایران واقع شده است؟ استان فارس در جنوب ایران و شیراز در جنوب اصفهان قرار دارد هوایی نوسان چگونه است؟ آب و هوای شیراز از تهران و اصفهان گرمتر است. در اردیبهشت شیراز بهترین و زیباترین روزهای سال را دارد.